اوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم و نستعين نستعین ذکر صلاباتی دسته باشیم و هدیه کنیم به مظهر متحره محمد و آل محمد اللهم صلحه برم که بحث دستتون باشه من از این فصل ثانیه باشم مستخان بدنی بحث رو را تومی فصل ثانی باید نگاه رو عنوام این فصل این هست ادله حجیت سیر اقلالی عدله حجیت در مسیر نه در بحث موضوع اون گفتیم یا آزگیش کنیم در مسیر استمباد استمباد گفتیم در مسیر استمباد منات برای حجید سیگر سه تا میتونه باشه سه مناس یک صحت خود سیره ثابت شد دو شاره امر کند یا به یه بیان کنه که سیره رو تبریت کنی. سه چشف امزایش ها. این سه تا منات بود بعدا که بتونیم خودجیت سیره اوگر را اثبات کنیم برای اون سهت خود سیر ثابت میشه عمل شار ثابت شد یا امزا اشاره ثابت میشه ما وارد صرف اول شدیم سنف اول عدله. خب سنف اول اون بود که اثبات میکرد سهت سیره اوی اوغلاویه. از اینجا توجه کرد؟ صرف اول اثبات صحت سیره های این تو دو تا بخش بحث شد. یادتونه من دو بخش چی بود؟ بخش اول و بخش سه در دو بخش بود این رو کتاب عنوان نداشته بود برداشت پناه اوگلایی خوب اون یکی چی اون یکی چی بگی چه یعنی میگم کتاب عنوان نداشت او بچه اول اثبات صحت کل سیر اغدایه اما دوم اثبات صحت ای او؟ نه نه یه رزبه پاهم باشیم باشیم نه نه نه توستم. پس بله شو ما در اثبات صحت سینده های اومدیم اثبات کنیم هر سیره اقلایهی میبینید حجت است به چهار دلیل عدل بیر چهاریانو برگیم و همشم کنابشه کردیم به چهار دلیل که همگی نگی خدش وارد برگوارن این فاس جدید رو گفت بیاید تفسیر قائد بشید پس قول به تفسیر یعنی اثبات صحت سیره های آمین عبود رو می از ما شاید که گفت قاید به تفسیل دشیم تیگه فقط رو های و اون یه قسم ملحق و قسم ملحق این تحصیل من رو بکنید پنجش طرفه برای تو خیلی واضح میشه خیلی خوب ما الان بخش به بخش هستیم داریم میگیم که آجام سیره های اقلاییه همش نمیشه ثابت کرد که بگیم ثابت کرد نمیشه که چیه نه نه نه اون اشکال بود سیره رو سیره نه ببینید درسته جمعه من رو شما تکبیل بریم درسته نمیشه ثابت کرد که همه سیره های اقلاییه هر سیره اقلاییه ایجاد شد اون حتما حتما خودتره دیگه بسه صحت الان ما تو صحت چون منو سریف اول پیمنات دوه منو خرسته پس بگید صحت الان در صدق چشم صحت سیره از خود سیره است؟ اونم نه از عمرش نه از امزایش خیلی وقت داره الان این اولیه هستیم می خوام ببینیم آقا همش خب صحیح شد حالا ببینیم بعدا روش از فوت فقه میشه اثبات حالا درست نمی صحت هر سیره اولایی رو اثبات کرد چهار تا دیو اون که داشت. نمیشه پس اثبات کرد اما سیره های که همه مردم همه امکنه هم، هم، و همه از ملتوش بوده اینا رو چه ثابت کرد به دو دلیگ دلیگ اول به دو دلیگ دلیگ اول اسمون به دیگه دلیل. به دو دلیگ اولش برهان این یا تا ترتیب کتاب این یعنی اولی اونی بود که از اجماع و سیره ی همی او دلال کشف میکردی که ما خطا را باشه باشد، صحیح باشد از علت به معنی رفتی بگرد پس اولی چه برهان لبنی؟ به دو دلیلی، یک برهان لبنی، دو برهان لبنی، دو برهان لبنی خواب، برهان لبنی بود، بگفتی اگر سیره عامه ای بود این همه توش علما و حکما و نوالبق و ارمقیون و اینها هستن این به این ناچه برسو که اشتباهی توش نباید باشه سیره درسته از علت به معلول رسید دلیل دوم خان قرحان علمی این بود که اگر سیره عامه باشد چشم می از علتش که حتما علتش یک نکته این که اعتقاض اقلایی بوده در جبله اینها بوده سید اسفانی و آقای ناینی همین مطلب رو بهش اشاره داشتن خیلی خوب تا اینجا بحث ما اینم جزوش به یک دید دیگری یعنی جزوه یه زاویه تقریبا شاید وسیعتری رو برای شما نشون داد اینجا رسیدیم که فرق بین این دو تا وجهی که گفته شد چیست؟ که یکیش برهان ال نمیشه یکیش برهان ال نمیشه اینو بعد همینا بگیر اینو بخونیم پس اولین مطلب بحث امروز والفرقو بین الوجهای که هم جلسه قبل گفتیم هم امروز اشاره کردن دیگه کاملا براتون روشن شد والفرقو بین الوجهای پس یه خواهش از شما دارم ببینید کتاب شما این کناره هاش رو میبینین کناره هاش هیچ تیتری عنوان چیزی نزد شما سعی کنید هر خط به خط یا پاراگراف به پاراگراف چی میخواد بگه عنوان داره دیگه اون عنوان ها رو بغل بنویسید لذا بعد از اینکه کتاب رو خوندید برمیگردید قشن همه عنوان ها براتون مشخصه توی تو این صفحه یه مطلب داری تو این صفحه دو مطلب داری و فرقه بین البشه حالا اینجا بقلش همون تیتری که گفته حالا نمیدن نمای زنی میگن بهش چی میگن زنی نمای زنی فرق بین دو استدلال استدلال بر سهت سهت یادتون باشه سهت سیره های همش نه سهت سیره های آمه خواه. چه گفتیم؟ رو اول حتما باید مشخص بده چون دو ماه دیگه این اول نمیدونی چیه خوش بنویسید صفحه 22 هرمش همون از اول, اول چه استحاله خطا عادتا در سیره آمه نمیدید تو مده هیچ نکته نمیمونه من همش رو میگم خدمت شما که بعدا ازیاد نشده ان الاو بالا چه تو سر کلاس عبارت روشنه اوازتون به توماره دیگه باشه اسماتی باشه که اون موقع میبینید ابهام زیاد پیدا می کنه چون یاد میده رضا یادداشت رو یاد انرا ویدیت زلال نمی کنید فوقش بعدا با مداد بنویسید بعدا پاک کنید ان اول، یعنی وجه اولی چه گفتیم استهالت الخطر عادتا تل العامه این من قبایل البرهان لمیه هیسا نسل و فیهه منه علت ای اتفاق کل دیدیم همه اتفاق داره توشون نوابق این هم پس متوجه میشیم که این اثری داره معلول نسل و ای نفی احتمال خطا احتمال خطا توش نه حرفی میشود یعنی چی؟ چی؟ نه نسلو موساری سیغه و خب آقای قیصری نفی احتمال خطا یعنی چی در حساب احتمالات نه نه نه حالا اون چرا نفی خود نفی احتمال خطا مساویس با صحت با شوارت بس صحت ثابت میشه از علت به معلول رسیدیم و سانی من قبیل ال اینی آقای از کردیم پرمان لیمی و هنی قشن تو زنیت جداست؟ از... اینی گفتیم از... از معلول به علت از دود به وجود آتش پی بریم خویل خوب چطور بود مگه توضیح میده مگه حیث و نسل و من معلوله یعنی اتفاق برشیع واحد در سیره آمه رو می بینیم برمی گدیم متوجه میشیم که این ریشش یک علت واحدی بوده ایل ال ال ال ال, ال, ال, ال ایل سبب ال واحد معتبر حالا چطور میرسیم؟ این دیگه توضیحش جلسه قبل گذشتیم و تکراری هم جلسه قبل تکراری هم بود یعنی باز بازداشتیم این مطلب اول درسه اموزه ما فرق بین دوتا تکلیل یا توضیح همچه خودتون اینجوری می نمیسیم، دیگه می نمیسیم، نجته فرق بین دو وجه حالا چون دو وجه بعدا نمیده که کدوم دو وجه دو وجه که برای اثبات آبا چنم یه لحظه با من, با من. اثبات سه سه. سهت این یاد تو نده اثبات سهت چون بعدا موسیقی دیگه هم میان اجتماب می‌کنه. اثبات سهت هر سیره این نه سیره های آمین. اسبت این دوتا نکته اول مطلب بعدی امروز. این کولد و کولد. یه اشکال و جوابی در این بس پیش میان. من یه لحظه ببینین. یه لحظه من ما حرفی نزدیم که چیزی نگفتیم که گفتیم اگر همه مردم در همه همکنه و همه زمان ها ای داشته باشن معلوم میشه این از یه جای صحیحی درستی منشع گرفته پس یه سیده درسته اینو گفتیم جای اشکال داره این این انقاط میگاره اشکال داره حرف دوم هم این بود که آقا جان اگر میبینید همه اغلا همه اوغلا رو... یعنی بعدش گفتم این اوله همه اوغلا بر چیزی اتفاق دارند معلوم میشه این صحیح حرف دومم میگه اگر همه اوغلا بر چیزی اتفاق دارن منشأش چیز صحیح بوده بچه اول بچه دوم خب چیزی نگفتیم این دوتا رو گفتیم این دوتا جای اشکال داره ان میگه بله قبل از اینکه ان رو بخونی هیفه بریم هیفه خودتون روش فکر کنید اگر جای اشکال هست بذارید خودم بگم چرا کتاب بدید یه ذره روش فکر کنید اگر جای به بذارید می میرسه بگید این نحوه کار ذهن شما رو اصولی میکنه من با اینکه فرصت خیلی نداریم ولی تمام اینجا رو انجام میدم هر جلسه تا ذهنتون همراه با اصول بشه ذهن شما اصولی بشه خب روز اول یه خودت فکر کنید با همدیگه دیگه راستش رو الان ذهنم گذاشتم که برش. یعنی الان نمیدم یعنی بود چیه؟ چه اشکال؟ ذهنم الان خالی شد. الان میخوام روی فکر کنم که اگر همه اقلا، حکم ها، نوابق، همهشون دارن در طول تاریخ یک فعلی رو انجام میدن خب این نمی... نمیتونه غلط باشه. این چه اشکال داره؟ تابلا تو این بخش اول اشکالش این بود که اشکالش بود که خب همه نیستن که بعضی از سیل‌ها چم هم همه نیستن حالا گفتم خب تو بخش دوم حالا همه رو میگم خب اینجا که اشکال وارد نیست چه اشکالی میشود تو این انقاط باشه همه نباقه و اینها بیان یه چیزی رو بگم بعد ما حق داریم بگیم که جا. آقا جان پس بحیده مستحیله بلکه چه اشتباه کرده باشه؟ مثلا مسئله یه که کرده اند. و اون جهان دیگر شرط همگانیه. این بخش دوم هم همگانی. همگانیه یاس. تا شهر چهار میانس 17 و 22 فلان چهار تا میشه یعنی کمیش میکنه یعنی یعنی الان اوغلا نه یا تو افریقا خدا آمریکا ازدواج و مهانه كل اوغلاش 1000 ساله داره خب اون که همدانی نیست اون خاص است دیگه تو همدانی اگه میتونی اشکار قیاسی که ایشون میگه و شما تایید کردید اینو یه لحظه با هم ببینیم این همدانی است مثلا همون بحث چهار رنگ اینو یعنی شما در 1400 سال پیش در کوفه که به گوش اون روات میرسید میگفتن هازا ما شیطان دیگه یه انگوش ده تا دو انگوش بیستا سه انگوش سی تا معلومه چهارتاش میده تا دیگه اینو همون موقع به آمریکا میبردی به آفریقا میبردی به اسکیمو هم میدادی به هر کسی دیگه همین همونه میگفتن اگر اینو میگید همگانی بودنش شد، او وقت روش میشه کار کرد. درسته؟ به نظر میاد دو روش ولی شاره همه رو ردش کرد. خب، اشکال تو تخم میکنم کاشم بگم. خاطر که میگه جای شاره با این که سیر همگانیه تو میتونه وارد باشه یعنی اشکال خوبیه اشکال واردی میتونه باشه خیلی خوب آقای کسری قبل داری هرخ آقای اسقری رو شما چی هست اشکال وارده از که تون رو حفاظت از این بحث کنیم کنی میگه اشکال وارده آقای ما تحرم. شما متعجه اشکال شدید؟ قبول تری زود قبول نکنید بعد دفاع کنید اگر شما مرزدار بودید خب بیاد دیگه خدافظ رفت. ما رفتیم اشکال وارد خب بنو بخونیم ببینیم گویا اشکال اینور دقیقا هم اشکالی چای اسخری گفت ببینید خوبه حالا آقای اسخری اگر پیش مطالعه کرده و گفته خیلی خوبه معلوم میشه پیش مطالعه میکنه این یک و خوبم فهمیده دو اگر بدون پیش مطالعه گفته معلوم میشه خیلی جواله خوب برحال هر کدوم باشه احتل حس یعن برای شما هست چی؟ بلده بلده بله دیگه بالاخره. خیلی بله. ولی همین ببین همین الان سه چار دقیقی که با هم کار کردیم این رو کار کنی خودتو برای خودتون تو مطالعتون پیش مطالعتون و انجام بدی مقلط بار نیاد هرچی این گفت بخونیم بریم جلو مخصوصا اصول باز فقه بدارم فقه توقیفیه دیگه و شما بگن احقام رو ولی اصول یه چیزیه که خودتون به ذهن خودتون میرسی فعل نمی کنه هر کسی میخواد باشه خب این قلته غایتما یستکشف و من امومیت سیرت فی جمیع الاساره و الامساره میگه آجان شما یه سیره آم چه این مرل بحث ماست دیگه باشه همه در همه زمان ها و همه مکان ها این سیره رو دارن قایت چیزی که ازش برداشت میشه اینه قایت و مایستکشف و من عمومیت سیرت فی جمعی لحصار و الهمصار ادرا ادراکان اقلائیان آمون بین الجمعی ادراک اقلائیه بین همه هست قبول باشه درسته ولی این ملازمه با صحت نیست این به معنای صحیح بودن سیره نیست شما بین همه اوقلاب می بریم میگهره چهار انگش چهار ش چهق شده. ولی این به من نیست که این درستن هست. چرا چون خودمون هم یک در روز پیش گفتیم. گفتیم اوقللا چشم دیدنشون تا اون تهرا نمیبینه ما انسانی. انسان یک انسان محدوددی گرفتیم شارع تا اون ته رو میبینه تا آخر رو میبینه ولی من با همین عقلم ها درسته از رو عقل سیره رو انتخاب کرد ولی همین عقل من نارس من یه چیزی رو میبینم فکر کنم همینه مجمع عقل کل نیست بله عقل کل نیستیم که مثل همین مثال کیاس مثل همین مثال روا الان انصافا من یک میلیون پول به شما میدم یک سال خواهی نگرده بعد از یک سال همون یه میلی خب نمیشه که من ذغل میکنم دیگه. پس اوقللا میتونه یه سری عامه باشه که آان این یه ضرری میکنه باید جبران چ میلیون میلیوندادلار شما به پروازش باید یک وصد بدی بهش حداقل. اگر اون سال ۹ بود که روحم می اود یه کار چ موقع یک میلیون دیتی باید در میلیون بده چون یک دهم شد تقریبا ارزش پولین ها خب ببینید اوقللا اینا میگن ولی شه این رو میگه هر کسی کار رو بکنه در باشش مهاربه با خداست. پس که چی شد؟؟ عقل ما هوت چند همگانی هم است ولی شاره قبول نداره یعنی درست نیست پس آجان مولا ببین جمله این میشه بین سیره همگانی که برخواسته از عقل است به قول شما به قول اصفهانی به قول ناینی با صحتش ملازمه وجود نداره بعضی هاش صحیح هم بعضی هاش صحیح نیستند مطلب خب، این یه جزوه شد دیده آبا اینو سریع باید بنویسیم تا یادم ندفته پس بحث بعدی این اشکا، بگم بود اشکا، بین اون جمله یه جمله تر و از این سرچا رو خرم به درست اونو بنیسیم بین، بروی این جمله خوبه بین سیر، بین حمیدانی بودن یا بین... چی بگیم بینی بسیم بین سیره... حالا یعنی این آن این ها دوباره این جامعه می کشت بین... بین این که مثلا سیره آبه. آه سیره آبه چی باشه؟ بین اثبات... عقلانی بودن سیره... همی... جمله رو تموم کنید اثبات... من اثبات کردم سیره عامه اقلامیست است با صحت آن ملازمه وجود ندارد. دکت کنم این تر تمیز شد برای نشکر توجه اشت اومده چی؟ دست حالا این تخته ها اینجوری تکو میخوره نمیشه خوب نوشت بس دیگه رحمش اولش بود تخته که نمیشه بدونم توند خوب <تصفيق> <تصفيق> دیگه اینا عوارض تدریس دیگه اگه دیر بنویسید خب ولات چند هازار لا يستلز صحته في الواقع و حالا شاهد میاره میگه هاجان این حرف من شاهد داره الکی همجوری میگم هر شد من قبول ندارم من قبول ندارم قدمار یه کارتون میداد هرچه هرچی میگفت می می گفت من مخالفم من مخالفم من قبولتم ما اونجوری نیستیم ما شاهد داریم و یش هدو و یش هدو لذانه که ما تقدمه میگه قبلا دیدیم اینو من انوال شارع المقدسه احکامن لاتنالها او گولو ناسه همون چهارتا انگشت به جای چهرتا شد بیستا اینو همه میبینیم ببینید دیگه اصل روات ما ابان جزوه بزرگان ماست میگه اون روایاتی که تو عراق این رو برای ما میگفت بگفتیم حاضر ما جاید نه شیطان یعنی خیلی دیگه درد ببینید تو روات اینجوری برخورد کمه میگفتن ها نمیدونیم ارمش رو به خود اهلش با گذار ولی تو اینجا دیگه همینم هم نه بگفتیم شیطانیه لا ی نالها او ناس لا تنالها او ناس بی مافی همون نوابه قدر هک ما، ای نوابه قدر چه ما را تو سر ما میزنید؟ سلبرتیایی نگفتند نوابه چی چی گفتن اینو گفته باشن هم میبینید کلاته و نه قدر ردع ام کسین من اصیار ال اکلایت فی ابوابن مختلفه. اشکالگواره شد. این سر همون احکام دادنام آب و ناز. بله. خیلی از موتوشبه میتصطلاح میکردن به این مسئله که با شما و همه که از نظام و سبر و سبر صورتی از بابا خیلی شما مثلا از حضرت رضا تحتیق است و دار است به نظر به به این جوری به این خلط میتونم واسه من شاید خیلی از مسئله است که وقتی جان در بس میشه، بس نمی‌ماند. اینجا هست یکی اینکه عقل ما ناقصه یه نکته دیگه هست شارع خلاف عقل حج نمی کنی که با معارض معارض با عقل باشه این هم هست یعنی اگر حکم به خلاف عقل دیدم یعنیم پیدا می این نیست یه نکته هم می نکته دیگر نیچه یک حجم عقلی ما داریم الان بحث ما اینجاست صرف یه حجم عقلی نیست یه حکم عقلی داریم که ازش یه سیده عامه درست شده این خیلی دیگه چیز قوی تری میشه تا یه حکم عقل خوشبخانی الان این که شما گفتید مثلا حرم رو به خاطر یه نکته عقلی بس. اون که سیره پشتش نبود اما بحث ما الان جایسته حکم عقل داریم نه تن حکم عقل داریم بلکه ازش یه سیره همگانی عامه درست شده خیلی سنگینی میشه حالا اینا که این فرس دارن میگن که باز عادل ما میبینی مشکل داره شاره نپسند دیده من به قول شما اینجا از این جهت هم حالا یه جهت دیگر میشه گفت شده که اینا دارن اگر بیا خود عقل رو رد میکنن عقل همراه با سیری آمیخته سختیه نیم به راحتی نمیشه لذت کرد به راحتی نمیشه لذت کرد حالا بسیار بسیار شما گفتید بعضیش هستن سیده نداره توش یه دوی قائلند دیگران هستن مخدیدی دیگه چقدر مخالفتنش نایومدن همراهی کنن یه دیر رفتن شکستن چیزها رو شکستن گفرها رو شکستن که بیرن تو و اینا هاره <تصفح> حالا باز اشکالتون ربطه نمیرم متوجه شدم یا نه دقیقا کجاش بود ولی مثلا <تصفح> یه کال شار اینجا اینجا اینجا من کجا من که, که دشت شعاره دشت شعاره دشت سیره اینجا من من حال کرده سال نظر مثبت نظرش مثبت نظر باشه ببین خب ما الان اصلا شاره هتا نظرش نمی دونیم ما هم هست یا سوگو... نه ما میگیم گیم سیره صحیحه باقی ما میگیم گیم سکوت نه نه نه ببین سکوت سکوت نه نه نه یه خرمتی نشه بداشون اون سکوت کارش از رزاست این توی سنف سنفون عدد ببرد کنیم اولان ما این سنف اول نه نیازی به اعلام شارع داریم نه نیازی به سکوت شارع داریم کشف دیم هیچی نمیخواهی ما هیچی نمیخواهی نمیخواهی نمیخواهی بریم وقتی نمیخواهی وقتی سیره عامه هست همه انجام دادن معلوم میشه صحیحه چرا؟ چون از منشه اقلایی برطاثره و وقتی سیره بزید و وقتی صحیح شد این رو بگم و وقتی صح شاره صوخور کرده؟ میگم بیرون. ولش کن. شاره چیزی گفته؟ ولش کن. خود سیره صحیح است. کتا دوش نیست. بالاتر اونم حل کردن بود. مثلا اینجا ما اینجا حوالی حوالی من بود چون. چه جوری گفتم در می رسد. دو تا چارت بسابم عزیزم. خوب خوب. این چه می گرام؟ ماش. بسن مسد خوب نمیگه که. نمیگه امکان نداره اینو بگی. مساله قياس علما قياس منطقی رو حساب Kobe میگیم با هر عاقلی بهش موتور رو درمیادین که اینجوری داره حساب میکنه که یه درجه شده این قياس 100 درصد منطقیه مثلا زیر سوال خب پس این همین اشکال اینجا میشه اشکال کتابه همون اشکال قبلی میشه اشکال جدید نشه اشکال, اشکال بوی وارده چه بگیم آقا جان ما طبق عقلمون چیزی رو فهمیدیم و از سیری هم ایجاد شد سیرم امس ولی شعره ممکنه نپذیده بچه میگید حتما سنگه این اشکال اشکال همه اشکال چیه؟ خیلی مواقع آسیره که خودش رو تو خودش رو بیرسیون سنگ خودش رو با اون درسته هم مثلا یک جایی حتی یک همین دیگه همین اشکال شد دیگه پس شما توی سیریه ببین همون قیاس و اینا برای ما خراب کرد کار رو حالا یه سیریه عامه داریم که به جمال ما سایه ولی دیگه اون اشکال باعث میشه که به اونا هم دیگه اعتماد نکنیم نتیجه شد دیگه این حرف شما نتیجه اشکاله پس همه سیره های عامه حتی عامه هم باشن از منشه عقلایی هم باشن به درد نمیخوره اینجا من نوشتم دیگه عقلانی بودن عامه فرض توی جایی دارید شاره هم به قیاس نیست که رد کرده ولی دیگه نمیتونه بهش اتکا کنیم چون شاید شاره از اینم راضی نیست همین نتیجه اشکالی میشه دیگه این استطلاع خراب میشه خیلی خوب و یش هدو لذالی که ما تقدم این انل شاره المقدسه احکاماً لا تنالوها و گل و ناص. اینو قبلا گفتیم حالا صرفش هم ببینیم بد نیست در اون جایی بود که مناقشه چندون بود؟ صفحه 27. تو مناقشه اولا و ثانیه تو مخصوصا مناقشه ثانیه رو ببینید صفحه 27 میگه یه شهرو به عدم موفقت شاره به ما هو آتلل اقله دائما ما نرها من انا ل شاره المقدس احکام ن لا تنالها و ناز به مافی هم اننا وابعقل خوچمان و قد قدردعا ان شسير من سيرهم في ابواب مختلف خدا میبینیم عقلش حالا بلا تشبیل عزوالله خیلی بیشتر از ماها میدسته دیگه لذا این به من نیست ما هرچی با عقلم رو سیره کردیم خدا هم همونو بپذیره سلام اینکه نقابه قینام همه شون همراهی میکنن و خیلی از سیله ها رو خدا رد کرده این پس شوش آدرس بزنید صفحه 27 ما تقدمه صفحه 27 آه. خودش آسان. آدرس داده من حوزان هم پاورم. خودش آد من انل الشريعه المقدسه احكاما لا تناله عقول الناس بما فيهم نباب نباب قد سما خب و لقد رد عن من الصير الاغلايه في ابواب مختلفه خب بهرار اشغال من بهشيتون كامل تيشت قول تا جواب حالا چون دیگه امروق چان خوندین دیگه رو قول کار نمیکنم خودتون اینا رو باید مش فکر کنید یعنی الان جای فکره که چه جوابی به این بدین دیگه چون بخوایم وایسیم و بس کنیم دیگه نمیتونیم پیش بریم مجبورم دیگه فقط بخونم قول تو ولی یاد بگیرید روش کار اصولی همینه مساله رو ببین فکر کن حالا تازه فکر فکرای مرحله بالاتری هم داریم ها مثلا یه فکر بالاتری نه که وقتی همین رو الان جواب دادیم مثلا یا وقتی خود بالاتر فکر کنیم اصلا اینا درست گفتن یا نه نقد کنیم اینه مثلا یه مرحله فوق اون هم اون هستش که اصلا این خط سیلی که الان انتخاب شده برای این بحث این خط سیل درسته من بودم یه جور دیگه چاید بحث میکردم این الان میشه فکر کنید ذهنتون رو باز بذارید تا اصول حرف بزنه سرکوبش نکنید و یادداشت کنید بعضی از اون یادداش هایی که میکنید بعد ها میبینید که سر میشه برای مطالب خیلی بالاتر قلط جواب این است میخونم جملش رو الاحکامولتی لا تصل عقول الناس الا ما فيه من المصالح ولا في الجمله اون احکامی که عقل‌های مردم به مصالح در او نمی‌رسد ولا في الجمله حالا 100 درصد 100 درصد هم عقول مردم نرسسه بلاخره فعل جملهش متوجه خب همین باعث میشه سیره ایجاد پس حداقل فعل جملهش رو که میفهمه. اون احکامی که مردم نمیفهمندش، عقل مردم نمیفهمه حتی فیل هم نمیفهمه فهمه یعنی اصلا نمی فهمه. و که از سیرال اقلائیتو این هم از این های سیرهای هم چه گفتید خود شارع و خداوند و مطال اومده ردش کرده المردو و عنها من قبل شاره اینا خیلی نیستن نما یه و فی موارده قلیلتن پس جواب حالا فعلا نمی تا به جواب بهتر بدسیم جواب اینه آقا جان اون مواردی که عقل ما بهش نمی اینا زیاد نیست این یک دو سیده هایی که شار ردش کرده اینا هم زیاد نیستند کمند به حیث لا تنافی حصولت معنان به صحتهی الواقع فی مثل سیر الامر حالا ببینید یلا ببینید میگه احکام که اقول همگانی بهش نرسه خیلی نیست اون سیره هایی که همگان بهش عمل کردن و شارع ردش کرده اینا هم خیلی نیست نتیجهش چی میشه؟ اگر من بیام در یک چیز جدیدی سیده همگانی ببینم چه از منشه حققای برخواست است باشه یقین نمی کنم صحیح هست قط پیدا نمی کنم صحیح هست ولی اطمینان پیدا اتمینان پیدا می کنم چه صحیح هست همین کافی اطمینان کافی نیازی نیست حد اعلا باشه اطمینان کافی قصاشغال شما رو در واقع پذیرفتیم اما میگیم مشکلی ایجاد نمیکنه ما راهمون رو ادامه میدیم انما تکون فی موارزه قلیلتن بهس به حیث لا تنافی حصول الاطمئنان به صحته فی الواقع فی مثل سیرال عامه در سیر عامه میتونیم اینو بنویسیم اول این اشغال اینا جواب موارد عدم سهت قدیل است این تا این جنب. از اینی استفاده کنیم این رو کنیم نوشن پس در سایه سیر عامه اگر هم قطع حاصل نشود اتمینا به صحیحه آنه حاصل می و همین کافی حسولات و نافیه منافعاتی به حصول اتمینا نداریم هم حاصل میشه و کافیه به صحت فی الواقع فی مثل سیر الامه به حسب حساب احتمالات. حساب احتمالات در اینجا نمی میگیم که همون چیزی که گفتیم میگیم این همه اوقللا همشون اگر یکی از حساب احتمالات هر وقت پرسسیدن از شما از یک شروع کنید از یک نفر شروع کنید. اگر فقط تو همه کلاس ما وفش نفر هستیم. فقط یه نفر یه چیزی رو قائل بشه بقیه باش مخالف باشن این احتمالش یک به این تعداد میشه دیگه. اگر دو نفر بودیم یکیشون قائل به چیزی بود احتمال سردش تو یک دوم اگر سه نفر بودن احتمال سر چه یک سوم نفر باشم که یک, یک در حالا دو نفر باشم میشه دو در سه نفر باشم سه در صد نفر باشم میشه صد در دیگه. حالا یه زمینه من اضافه کردم اینو خیلی نگفتم این بحث حساب احتمالات هم اگر فاستیم مراجع کنید آ سری اموز گفت این اصطلاحش رو قوی هم شهید سر وارد اصول کرده. اینو دیدی دیگه حساب احتمالات هم نداره. حتی مظفر هم نداشته شهید این مطلب رو وارد کرده از ریاضیات من اینو اضافه کردم اگر صد نفر بودن تاشون صد... هم قبول داریم میشه صد در صد. حالا به جای این بگو اگر ده میلیارد انسانی که داریم هش میلیارد همهشون چون سیره عامه یعنی میلیارد در هش میلیارد خیلی بالاتر از صد در صده. فقط 90 درصد من نمیدونم اون یک دهم درصد 1 صدام درصد لحاظ شده یا نه ولی 8 میلیارد 8 میلیاردون با اینکه همون 100 درصده اما این دقیقه حالا سیره اامه گفتین فقط الان نیست که در طول تاریخ فرض کن 20 میلیارد انسان تا حالا خلق شده 20 میلیارد در 20 میلیارد حساب احتمالات بیا احتمال خطا نداره خیالش راحت بگر حالا میگه به حساب احتمالات ما اطمینان پیدا می کنیم. این به حساب حساب احتمالات مطلل به اطمینان، اطمینان به حساب این حساب احتمالات. و علاوه می‌پرسد که قط اول وجدانی باشه، بخ... بخاطر خاطر این اشکالتون ما از قط یه خود کوتاه می‌ایم و از آن کافن فی حدیت حالا شما میگید که یه اشکال اینجا پیش میاد. میگید که آجان اتمینان قبول کردید اتمینان به چه در این حجت نیست که قط باید پیدا کنیم مگه یاده نیست پارسال شکل که شای خنسالی بگفت قط حجیت داره و ذاتا حجت اتمینان چه حجت نیست میگه ها شما بس اتمینان رو نکردید دیگه اطمینان رو بس نکردید بعدا از فتنا حجیت الهتمینانه به دلیل غیر سیدت الاغلاییه او به سیدت الاغلاییت محرز امزاوها میگه خیالتون را عد نترسید. ما حجیت اطمینان را در جای دیگر بحث میکنیم از یکی از این دوتا دلیل اثبات میکنیم یا با یک دلیلی غیر سیره اغلاییه یا با یک سیره اغلاییه که برای ما ثابت و محرز هست امضاش توسط شاهه پس این این روش. حجیت اطمینان پس این پتنبل میشه حجیت اطمینان برای ما ثابت شده است یه رسم اینجا رو ببینید تا عبارت چه جاش حل بشه وجیهت اطمینان برای ما ثابت شده است اگر ببینیم وجیهت اطمینان فاصله اوغلاوی بر ما حل شده است یعنی اوغلا به اطمینان عمل می‌کنند سری اوغلا داریم که اطمینان وجحت است اینو می‌پذیرید اینجا توی این جواب میگیم این که دور میشه ما برای اثبات حجیت سیر، اثبات سهعت سیر اوغلداریه به اطمینان اکتفا میکنیم که حجیت اطمینان خودش از سیر اوغلداریه به درش باشه این یه دور مظلم میشه چون سه تا چیز داده بشه لسه اینا زرنیا برای چ این اشکال وارد بشه میگن حجیت اطمینان برای ما ثابت شده است نه سیره او از غیر سیره اوقلایی از غیر سیره که دور پیش اد. یا اگر هم سییر اوقلایی هست یا از سیره مهرس امض ها سی که امضاش مهرس این یعیه دیگه اینجا دور پیش نمیاد ما سییرهایی رو بر میکنیم که؟ این اطمینان رو در جایی بکاریم که امضاش محرز نیست خیر اینم از این حتما این نکته رو تو کتابتون یادداشت کنید سوما و خاص سوملا لایخ خاص سریع وقت در نماز من عدم اینجا هم مطلب در واقع سوم ماست پس امروز یک فرق بین دو استدلال گفتیم دو اشکال و جواب سومین نکته اینه که چیزی نداره این همین که آقا جان سیره عامه رو چه داریم بحث میکنیم یه سیره خاصه خوبم داشتیم اونم ملحره به همینه ببینید سملایخو ان نماز کردام من عدم الحاجت ال ال امضاء فسیره المستمره فی جميع الاعصار و یعنی همون سیره عامه یجری همین مطلب فی قسم من اقسام سیرتل خاصت عیزن کدوم بود؟ و هی از سیرتلتی خاص هست تخت هست و به مکانن خاصن ولکن به هیسولو وقع کلو واحدن من الاغلهای فیزالکل مکانه هر کسی رو ببری به اونجا لکانم موقفه اینا چه تن تن دیگه اینا ترجمه بکنم؟ دور از شهر شما میشه ها اگر ولی نیاز شد بگید ترجم موقف عملی اون شخص هر عاقل رو ببرید عملا اون هم همین کار رو میکنه میگید یادمون رفته چی بود مثالش میگه نظیر رو ل... اینا تکراریه دیگه نظیر رو لبس سیاه بل بیز فرما هاره حاره لباس سفید اینجا کسیه میپوشه ولی ببرید تو بناتقل بیابان اونجا مجبور سفید رو چون سیاه دیگه و فراز لباسیار ازای امور رو بپوشیم از آلمان میمیده دیگه فوازل قسم من از سیرت الخاصاته تلحق حکما به سیرت العامته چه اینو چند بار گفته بود وزالکه ذالک لئن الوجهین المتقدمین فی سیرت العامه همون دو وجهی که گفتیم که یکیش برهان لمی بود یکیش برهان انی بود همون دو وجه پس من اینجا اشاره میکنم این ممکنه بعدا فراموش بشه این و چاینل متعقدمن دلیل برهان لمی و اینی چه گذشت همون دو تا دلیل در سیره عامه جاری بود اینها یجريان فیها ایزند تو این سیره خاصه هم جاری هستند چه انوال اشکال هم. ول جواب عرفتخ و جواب الی عرفته و انفت یاحتیا فیها ایزند پس همون دو تا استدلال میاد در مورد این سیره خاص همون دو تا اشکال و جواب هم در اینجا میاد یعنی همین چند روزه همین الان گذشت آنفان یعنی همین گذشته نه خیلی کمی حالا گذشته آره. بود معادله فارسی خیلی من نه نه یافتم خب اول سلامات بفرستید الله واطعو خواهش می‌کنم